جلسه 9 از جلسات استاد جدی. سلام بر شما الحمدلله و هنات العالمین. و سلام على سيدنا محمد النور و اخباری با اصولی در مسائل طبیعیات و رزیفیاتی و اداریات نیست برکه در مسائل برقی فقیه اونم از حیث عدلدهی که قابل سنات باشه از ده طرف اخباری بایدمه که تنها دلیب برا احکام شر سنت و سه دلیل کتاب و عقل و اجمال رو نتیشم میکنند سوی این به دلیلیت عدلی اربعه و حتی معاصرین بیشتر از این چهار دلیل رو هم در اطراف این عدلی مطرح می کنند و بهش اصطناف می کنند به این دو اخباری قبول نداشتیم و اون تقسیم سلاسی که در کلمات همین از تراباد اومده که قاعد شده به اینجا بومنظریه تقسیم میشه اسه به اسمی منتقی میشه ماده محسوس و اسمی منتقی میشه به ماده قریب به حس و اسمی منتقی میشه به ماده برید از حس و در اون قسم محسوسش مطلقا قاعده منجیتن اخباریین در قسم دومش خیل و در قسم سم نافیان نافی و این رو بکریم به مبازات همین تفصیل سلاسی این رو تقسیم کنیم به علم حسی و علم حدسی و علم عبدی علم منطقی به در دردوی علم حقیقی و اعتباری تقابل متعاکستی داره یعنی روزه روی همه زیدترین علم برصفه ترین علم علوم اعتباری نصابه شد تمامی قابل این گابل اثباث در دیتره مساعده قرعی بعد از این مقدمه گفتیم تنها راه توجیل کلمات اختباریین و تدبیرش بر مسائل فری، اینه که از یه زاویه که مفید باشه فنی باشه باید بشیم با اون که ظهورا تفصیم میشه به سرش چیزی که واقعیت داره و ارتباطی هم به طبیعیات و ریاضیات و الانیات هم نداره و اون استرابه کلمات اخباری رو هم کم میکنه و یک اعتلافی میشه بین اخباری و اصولی که اختلافشون به اصول دین برمگرده اینه که ظهور تقسیم میشه به ظهور بدیه اولیه بدیهی محسوس که غیر قابل اینکاره دومی ظهور استظهاری که به جمله محل مناقشه اخواهی این استظهارات را قبول ندارن به نفسه مثلا در آئی شریف رمزه برو به بروسه کم قائلا به اینکه اگر روایت نبود دینای از جز متشابهات و که با بودن روایت و الانت اون روایت دینای از اجمال در اومده به که موارد استظهار رو قائلا به عدم اونجیدش دقیق سه با من که استنباتی اینه ظهور استنباتی ظهور استنباتی مورد انتحار همه اخباری حتی اخباری اینی که تردیق شدن و مکتبشون تردیق شده مرزانه ظهور استنباتی رو باید نیستن در رابطه با ظهور استنباتی به اصولی این قائل بودتی و خیلی از قروعات رو حتی با این ظهور استنباطی مستدلش میکنن و مسائل خیلی خیلی زیادی داره و شاید 70 درصد احرام مبتنی بر ظهور استنباطی پیدن و در ظهور و ظهور استنباطی خارج و موقع میشه به مواهزی مرتبط به ظهور استعمالتی مسئله ترتب با تمام سیترش مباحث اجتماع امرونت مباحث اختصاق امر بشه نسبت به نه یه زدش مواهز استصاب ادم ازدی مواهز استصاب در احکام کنید و تمام مباحث پیچیده یسولی مباحث انقلاب نسبت یا نه بدلی، نه استثاری حالا مصوری مستطم و نظیری هم داره مثال اولی که برای زدیم مثال در نماز جماعت بود که گفتیم شخصی در هین روکو امام اختدا میکنه و بعد از اختدا شک میکنه به روکو امام رسید یا نهید در وجهت اول اونم در هین روکو امام اختدا کنه این محل بحثه اگر که چی شکل در ادراک رکوع امام داشته باشه بفتد از سلام چرا آقاق نماز به هیچ با از قابلیت بابل... این رو نداره که مکم به سهتش بشه نه جماعتن نه پرازن بعضیها ها بایدن به اینکه که میشه این رو مکم به صحتش کرد و تنها دلیلشون استصابه استثاب بقا امام تا اینکه من بهش برسن استثاب بقا امام در رکوعش تا رکوع شخص معموم یا استثاب بقا امام در رکوعش تا لحوق من به امام چون اگه بگیم استثاب بقا امام تا رکوع من خب رکوع من زمانش معلومه اون دیگه مشکوکه اون رفع از امام مشکوکه من این که میدونم که ای می رفتم بود بذار مشکوکه میگن استصحاب بقا امام در رکوع تا رکوع معموم در جزران نوشتم علم مشکوکه این آقشه داره چون رکوع من زمانش معلومه لذا تعبیر دومی براش نوشتم که استصحاب بقا امام در رکوع تا رکوع من دوهو مشکولیم نمیدونم که ایمان حف شدن این میکنن و میگن یک جز از دو جز محرزه جز دومم که محرز نیست با استثاب احرازش میکنیم و استثابی که جریان میتونه داشته باشه در این فر اینه که زمان رکوه من معلومه زمان رفع رأس امام معلوم نیست لذا یک جزءش مهر از که روکو من رفع رأس امام و روکو امام معلوم نیست استصاب میکنه و اگر غیر این باشه ما نمیتونیم نسبت به اون مشکوک حالت سابقه فرض کنیم. حالت سابقه نداری اون رو من روحوق من حالت سابقه نداری نمیشه ولی اگر بگیم نه روکو من زمانش معلومه روکو امن معلوم نیست یکیش رو مهر از اون بل که روکو من باشه ولی رفعه از امن معلوم نیست اونو می کنند بقایش رو در روکو اش باقی مونده در روکو اش میشه در جز اینطوری نمشتم این تغییر در عبارت برای اون مشکل که گیرد نگفتم هر میشه الان حال اینها ها به جرایان استثاب با استثاب اینو میان درستش میکنن و میگن استثاب موضوعش مرکب از وجدان و تعبده و بعد از تحقق این موضوع مرکب مهم به ادراک میشه و نمازش صحیحه و این رو در صفحه صد و کونزه و که به این نحوه ولی منکرینه این استثاب ولی این استثاب نیاز به تعمل داره نیاز به استنباط داره یعنی عرف مردمی داره ما اما چطوری این استثاب جاری شد چی بدیم این از احده ساعت جواهد محفظت حمدانی ناهینی مقای خوبی برمیان و این داره قابل حصول یا استحصاله این چیتداری یا نداره خصصول ای میگن و چیندار. الائنا القالال اصول و علق ها من تتفر رون که روای شما با این حال تخفیش کنیدید و اعرفپو اعرفو معانی یا کل ها بنی در این موارد پشتمان روایی هم داره که میشه لذا قاهلا به اون چیتش اینا میان اینا رو استتنب میکنند. اونای که قاعده می جره این استصاب میکنن کنیم ولی بلی میگن نه این نماز نمیتونه محکوم مثل هستا جاری نیست و نمیشین استصاب رو خودجنس بدونیم بخواد اینکه اگر کسی بخواد استصاب بقا ایمان در رکو بکنه و دیگه من به رکو امام رسیدم رسیدن من به رکو امام لازمه عقلی بقا ایمان در رکوش این هیچ عقلی انکارش نمیکنه اگر امام یک دقیقه در ركوعش بمونه من یقینا بهش اگر ده هم بمونه من بهش رسیدم چرا فقها گیر میدن امام اگر پنج هم در رکوع بمونه من هتما بهش رسیدم میگه چرا گیر میدن میگن نمیشه میگن این لازمه عقلیش لازمه عقلی و تکوین موندن امام پنج ثانیه در رکوع که شما به ش و این لازمه اقلی حجیت نداره لازمه اقلی حتیت نداره استصاب میشه از است مصبت استصاب نمیتونه است مصبت باشه یعنی از مصبت رو آقایان خوندن اصل بر نوع یا مصدق یا غیر مصبته اصل مصدق مصبت اصلی میگن که دوازمه غیر شرعیه نمیخواد اثبات کنن و این رو در صفحه یا در سبقی نخورده ولی در صفحه 116 این طوری نوشتم مستصف چار بسم یعنی همیشه در وادی استثاب ما چهار تا مستصف داریم به حسب استقرام دیگه بیشتر از این هم بیدانه می کنید مستصفی که همیشه مخوان برای استثاب جاری کنن یکی از این چار بسم است... مستصف ما و هم که در تعبیرات دارم میگم لازمه اقلی مستصف اصلاف نمیشه نه لازمه عقلی استصحاب لازمه عقلی استصحاب ثابت میشه لازمه عقلی مستحب دارم مینویسم و دارم میگم این بین مستحب و استصحاب فرده لازمه عقلی خود مستثرب ثابت نمیشه مستثرب ما بقاء امام در رکوه. لازمه عقلی اون بقا که ادراک من باشه اون اثبات نمیشه ولی لازمه عقلی خود استصحاب اثبات میشه یکی از لوازم عقلی استصحاب چیه اجزاء مونعجتیه مؤذلگیه تمامی ها لازمه عقلیشه دیگه اینا بر استصحاب ثابت میشه لازمه عقلی مستصحاب رو میخوان میگن پس این تعریف‌ها رو آقای تعامل کنم قبلا این تفسیر رو به صورت مفصل در جزوه نوشتم که بین لازمه عقلی استصاب و مستصف فرده حالا مستصف بر چهار قسمه ما اینو که این داریم که به خاطر که اصلاف صورت قید هم به اینکه که چون که موضوع ما اینجا رفور من به قیدیت همراه با امامه این موضوع، حالت چرا نداری به که امام مستقل از موضوع, نه. موضوع من چرا حالت حساب نداره فقط موضوع من من همراه با امامه. هم من موضوع این من, اون من من, من... نداره الان طب. برگشت برگردون بحث مستفه اگه دو تا فرض دیگه، دو تا فرض آره دو تا فرده. دو تا, دو تا دارم که گفتیم اگه استصحاب جایی بشه در بقا مام در رکوعش لازمه عقلش که من من بهشت چون دو ثانیه من وقت میخواستم اون وایس من بهش برسم. یقینا اون ده ثانیه مونده و یقینا بهش رسیدم ولی باز کی نداشت. چون لازمه عقلی بقای مستصله. این شکی حکاکی نداره اون فرمایشی شما که میگی او حالت سابقه نداره چون تبیب در کار اون یه فرض دومیه که الان میگم چرا حالت سابقه نداره اینو در صفحه 100 در صفحه 117 میشه اینا هست حالا نکته مبهم نمیذارم بمونه ولی واقعا حزم اموال طول میکشه البته آقایین نباید رو باید در اصول فقه و موجزینام میخوندن ولی حالا اونایی هم که نخوندن یه مقدار تعمل کنید چه میافته؟ سختی نیست. هرچند بقای ما درسته. استصحاب بقا امام در رکوش تا من بهش برسم حالا شما در رحوم من شک داریم خب این حالا چرا شک دارم ولی حالا تافقه نداریم یه استصحاب ببین دو جور نوشتم در مرد دو جور نوشتم به خاطر که در کلمات هم در جور اومده این استصحابی که قایلین به سهتیاری می کنن کدومه استصحاب بقا امام در رکوش تا من برسم استثاب عدم رفع رأس امام تا من بهش برسم و استصحاب سومی که امروز گفتیم استثاب صرف چی بود؟ گفتیم رو من زمانش معلومه زمان رفع رأس امام معلوم نیست اصل عدم رفع رأسشه بنابراین دو تا استثاب با سه تا فرس هر کدومش باشه قایلین به حجیت اینا رو بخوان بگن یه مشکلی داره یا حالت سابقه نداره یا اثر برش مترتب نمیشه یا لازمه افریه علا کل حال قائلین به صحتی نماز تنها دلیلشون استصاب استنباطیه استصحاب استنباطی نه استصاب بدوی استصاب بدوی قبلا تهارت داشتم اما شک کنم بگو دارم این معمولی ولی این استثاب استثاب استنباتیه ما بگه گفتیم کون الامام رای که قبل رکوع شخص یا تکبیر شخص اینا استنباتیه حالا مستثب تقسیم میشه به چهار قسم اسم اولین که مستثب و میشه شرعی باشه مثل استثاب حدث حدث حکمون شرعی لازمی است میکنیم تا حدث رو و شعر واجبه که بره قصد کنه یا حضور بگیره حدث حکم شرعی مستثرباست اسم دوم اینه که موضوع حکم شرعی باشه خودش حکم شرعی نیست موضوع حکم شرعیه مثل استصحاب عدالت استصحاب عدالت می برای زید برای حکم شرعی یعنی جواز قبول شهادتش و جواز اقتدار به این شخص موضوع حکم شرعی این هم محل خلاف نیست قسم سوم اینه که موضوع حکم شرعی باشه و اون حکم شرعی خودش هم موضوع حکم شرعی دومی باشه ما استصاب میکنیم یک چیزی رو که موضوع حکم شرعیه بعد خود اون حکم موضوع حکم شرعی دومی اینم باز استتاب در شیاریه مثل اینکه مثل ادالت فقيه ادالت فقيه موضوع حکم بر جواز تقلیدش جواز تقلید حکم شرعیه. ادالت عدالت فقيه موضوع مشریوع حالا خود همین حکم شرعی یعنی جواز تقلید موضوع حکم شرعی دومیه که نفوز حکم باشه نفوز حکم این فقید به خاطر اختلاف است که حکم هر مجتهدی نافذه یا حکم مجتهدی که مرجع تقرید باشه نافذه طبق نظریه حکم مرجع تقرید نافذه نه هر مجتهدی لذا لودار علم بین آقای خوی و محمد جواد مغنیه یقیناً حکم آقای خویی نافذ میشه نه محمد جواد محلیه تو خواهد اینکه مرزاییت نداشته ولو اجتحادش هم محفوق آقای خوییه علاقه این سه اسم قسم چهارم قسم چهارم اینه که مستذهب ما سبب باشه نه موضوع سبب تکوینی یک شیء دیگری که اون شیء دیگر موضوع حکم بنابراین بنابراین مستثره ما سبب تکوینی چیزیه که اون چیز موضوع حکم شرعیه حالا در این مورد که مستثره ما موضوع نیست حکم شرعی نیست سبب تکمینی یک حکم شرعیه یک چیزیه که اون چیز موضوع حکم شرعیه این رو میگن هست مسئله این قسم چارم اینجا نوشتم و هنا مر بزل است و مس معمول است یعنی پس فقیهان اینجا میبندن اینجا محل اختلافه یعنی تمام اختلافات در این چهارمیه که استصاب در این موارد جاری میشه که مستحب ما سبب تکوینی لشیءه که اون شی موضوع حکم شرعیه مثل چی همین مثال جماعت مستحب ما بقاء امام در رکوعشه لازمه بقاء امام در رکوع لهوق من و این لهوق موضوع حکم به صحته معلوم شد استصحاب بقا امام سبب تکمینی و عقلی لحوقه اگه به من اتمن بشت سیدم دیگه مستصحاب ما چی بود بقا امام در رکول بقا امام در رکول سبب تکمینی عقلی لحوقه و لهو لحوق موضوع مکم شرعیه حالا این لحوق رسوات میکنه، میکنی نمیکنه این اختلافیه بعضی ها میگن اثبات نمیکنه، بعضی ها میگن اثبات میکنه. داخل پرانتیز من یک تفسیری رو بگم اونهایی که قائلن به عدم حجیت اصل مثبت، اونهایی که قائلن به اینکه استصحاب اصل عملیه و الا اگر استصاب اماره باشه یقینا این لوگو رسوانی بنابراین میگن اصل مثبت نیست و اصل مثبت حدیقیت نداره بنابراین که استصاب را اصل عملی بدونیم که ما علیه و اگر استصحاب قاعده اقلائی باشه، اماره باشه اماره لوازم اقلیشو اثبات میکنه یه مثال از بیرون بزنیم زید اثر امر این یه ده سالی مفقوده احسان ی مفقود خبری داشت رفته در نجف درس بخونه و خبری نداریم ایران سلم نداره این رو یه موقع ما شک میکنیم که آیا این زید ما که گم شده تحیز داره یعنی یه جای اشغال کردی یا نه نتحیض یعنی جای اشغال کرده یا نه تحیز؟ یعنی فوت شد رفت هوا کل جسمه متحیز تحیز داری یا نداره؟ تحیز لازمه عقلی حیات زیده ما در حیاتش داریم لازمه اقلی حیاتش تحیزه لازمه عادی حیاتش اینه که ریش در آورده لازمه عادیشه دیگه یقینا این ریش در آورده و بزرگ شده و بالغ شده حالا اگر یک آدلی اماری، خبر بیاره از حیات زید هم تحیزش اثبات میشه هم لهیش اثبات میشه و اگر اومدیم و استصاب کردیم حیاتش رو نه تحیزش اثبات میشه نه لحیش اثبات میشه معلوم شد؟ حالا اگر استصاب رو ما اصل عملی بدونیم لوازم عقلی و عرفی اثبات نمی‌شه. به خاطر که میگن این تعبدی اشاره در هیته خودش تصرف میکنه. معنی اشاره سبب قهاله یا چیه که بیا بگی این ریش داره یا نداره یا این تعیض داره یا نداره. به شاره درکی نداره، تهیز مرتبط به متن است ریش داره یا نداره، اونو مرادیه باز ارتباطی به شاره نداره. بنابراین شاره اثر شرعی رو اثبات میکنه این زید زنده است بنابراین زنش رو نمیشه بایش ازدواش کرد اموالش رو نمیشه تقسیم کرد و برایشن خاطئه نمیشه کن اثر شرعی برش مترففل میشه ولی اثر عقلی و اثر عرفی و عادی برش مترففل نمیشه به خاطر اینکه از هیته شاره خارجه و استثاب از عملی تأخدیه در هیته خودش تصرف میکنه ولی اگر اماره اقلایی باشه اگر اقلایی باشه هم تحیزش اثبات میشه هم دهگش اثبات میشه و تمام آثار غیر شرعی برش میشه. نمیشه این تفسره اگر استصحاب ما اصل عملی تعبدی محض بدونیم یقینا اصل مثبت نیست یعنی در مصبتاتش حجیت نداره ولی اگر اماره باشه حجیت داره این تمام پرانتز حالا این بحث چهارمی که گفتیم مستصحب ما سبب تکوینی شی باشه که اون شی موضوع حکم شرعی باشه مثل استصاب بقا امام در رکوع که سبب تکوینی لهومه و این لهوم موضوع حکم شرعی که صحت باشه حالا این استصحاب این رو هم رسوات یا نه اختلاف العلماء مثلا این که هر چیزی بعد انا موضوع, هستش راست اگه به نام ترکیف موضوع هست عدم بدونیم موضوع از موضوع که به ترکیب بدونیم یعنی ترکیب اینجا موجود مشهر اگر بنا به تغیید نگاه کنیم ما دیگه موجود موجود موضوع. این دیگه اونجا موجود مشهر نیست بلکه قید موجوده. حالا اینا رو چرا اینطوری تفصیل می‌کنی؟ شما نه، ما در جریان استصحاب حالا نگفتیم که گفتیم استصحاب بقا بشه و او اثبات بشه. خب. چرا میگیم که استصحاب جاری نمیشه چون میگیم که موجود مشهر نیست بلکه لازمه اولیه ولی اگر ما لازمی امندون بناهر ترکیب بدونیم این موضوع رو خب موضوع مشعریه یکی نگا تا جبون ما این موضوع موضوع مشعری چیه خب یکی رکوع امام و یکی هم رکوع معمولی رکوع معمولی رکوع معمولی دو تا ذاته دو ذاته یکی شو میدونیم بحش. یکی شو نمیدونیم اون یکی میدونیم که استصحاب نداره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 سهت نماز رو اثبات کنیم و الله چرا حالت سابقه داره از عدم رفع رسشه یا از بقایشه یا عدم بقایشه اینها مفید این حکمه به صحت نمیتونه باشه به با خاطر اگر یک جازش هم بیاد اون یکی جازش محرز چی که با اونی که با وجدان اثبات میشه هر کدومش باشه اون یکی حالت سابقه نداره برای ifade ذهن حالا شما اونی که داره میدونی مثلا فرض فرض ترکیبی به همه دو تا ذات مستقله یکی ذات رکوع منه خب. یکی ذات رکوع امامه خب, خب. من رکوع خودم به وجدان نرسیدم رکوع امام با اثباته شو خب استصحاب بمورد شو اینم من امرت می‌کنم بشه من حالت سابقه ندارم یعنی موضوع من نه همین ترخیص وقتی استصحاب در جاری میشه خب امس بت همون روخوی امامو که من میاد مثبت چیه روخوی امام خوب بس لازمهشو اثبات کرد یعنی روخوی روخوی امامو من بهش رسیدم ك... موضوع حکم شرعی منم روخوی من روخوی امام بود نه خور... نمیگم خور... موضوع مرکبه اما حیاه موضوع اونها مرکب از دو موضوع امام که نینی روح امام میزن مرکل از دوتاشه حالا بیان به سمت گوه و فرایدو مقید میشه اینطوری حالا که کادره حالا بیارد به این که دارم میگم تا خلق مرتفع بشه یه خلقی تو ذهن هست موضوع یا بسیطه یا مرکل اینو من میروه صفحه شو صفحه بزنم که تا صفحه چند بود خ این صفحه بزنم تا اشتباه در صفحه صف گفتیم که موضوع یا پیح یا مرکب بسیدش بر دو بسم بسید بر دو بسم یا عنوانی ذاتی مثل انسانیت مثل ما مثل ارض، مثل تراب امثال اینها که استثار میشه عنوان ذاتی هم اینها یا اینکه عنوان انتظائیه عنوانی که ما انتظای کردیم عنوان ذاتی نیست مثل تقدم ترخور تقارن، اجتماع و امثال اینها و بسیارم که مرکبه مرکب از دو جزه و خود موضوعات مرکبه خودشون بدونهده یا ذات دوتا جز رو ما بخوایم استصاب کنیم یا یک عنوان منتظه از دو جزء رو. اگر ذات دوتا جز رو بخوایم استصاب کنیم یا یکی از دو جزء رو استصاب کنیم زمینه اون یکی بکنیم وشدانم لازمه عقلیش اون موضوع حکمیاری ماست و اگر عنوان انتظایی از دو تا رو بخوایم استصاب بکنیم عنوان انتظایی حالت سابقه نداره چرا به خاطر اینکه مفروضینه که از دو تا جزء میخواد انتظا بشه و انتظاع یک عنوان منتزع از دو جزش و دو طرفش متقضمه به تحقق دو طرف در خارج. و اگر بنا باشین عنوان انتظایی از دو تا موجود خارجی محقق انتظا بشه بعد از تحقق دو طرف ما دیگه جهلی نداریم تا اینجا استصاب کنیم و قبل از تحقق دو طرف عنوان انتظایی نداریم اصلا عنوان انتظایی محقق نشده لذا در این صفحه اینطوری نوشتم که فی موارد که اون الموضوع عنوان انتظایی بسیط هستند. عنوان انتظایی بسیط مثل تقارن اجتماع تقدم تأخر امثال این ها وقتی اینها باشه فلایجی الاسطساب فی نفس هازن انوان انتظایی بسیط. بسن قبلیت که آقای خویی داره میگه تقارنی که آقای حکیم داره میگه نه عنوان انتظاییه عنوان انتظایی قبل از تحقق دو طرفش وجودی نداره بعد از تحقق دو طرفش هم که شکی ما نداریم بخوایم استساد جاری کنیم دو طرف از دو طرفیه عنوان بسیط مثل تبارون مثل اجتماع مثل تقدم مثل, مثل تحقق انتظاییه یه عنوان بسیط انتظاییه عناوین انتظایی بسیط دیگه، عنوان انتظایی بسیطه شما از همه این طلبه ها یک عنوانی رو انتظام کن اون عنوان منتظر بسیط همشه بسیت بله؟ بسیت هم اون بسیط ذاتیه. یکی بسیط ذاتی مثل ادالت زید مثل انسانیت زید حیوانیت زید امثالی ها بسیط ذاتی هست این بسیط انتظاییه آره اینا انتزایی هم تمام عناوین انتزایی بسیط دیگه شبهه دارید شما چرا اینو کردید تو مرکب دست خودش دو قسمه مرکب دو قسمه بخاطر که بعضی از موارد دو تا جزء اشمت نظر بعضی از موارد موارد مجموع دو جز مد نظره اینجام مفتی بشه درباره آره مرکب سر از بسیط در میاره نه بسیط ذاتی بسیت انتظایی نکنید این بعد از اینکه جزورو خوندید اشکالات رفت میشه به خاطر همین سخت بودنش اسمش رو ظهور استنباتی یعنی تفهیمش الان سخته تا چه نزد به اینکه ما بدون بفهمیم اینه چیه اخباری که این رو میتونه قبول کنه اینا ظهور استنباتیه یعنی خیلی باید با ذهن ور بر برید در موضوع مرکب یا دو تا جزءش واقعا ذاتشون مستقل نظره یا نه یک عنوانی از این دو تا میشه قبلیت تاخر تبارون اجتماع و مجموع این دو تا ناناوید انتزاعی بسیطند لا یجی علی استصافی نفس هازل انوال انتزاعی بسیط چرا عدم سبب حالت سابق از این دها زل عنوان المنتزع اینا سابقه نداره این حالت سابقه نداره این انتظایی. چون انتظایی آدرس من بدم آقای مراجعه کنن مال حاشیه آقا رضا همدانی بر وسائل در اونجا ایشون مقصود آورده هم در اول وسائل داره هم در باب استصابش که این عنوان انتظایی متقبنه به دو طرفه تا اون دو طرف نباشه نمیشه انتظای کرد چون یک بحث ذهنی محض و خیالی که نیست ما باید این انتظارش کنیم از چه انتظار کنیم؟ باید دو طرف باشه تا انتظار کنیم بنابراین عنوان بسیط انتظاری حالت سابقه نداره اون موقع که حالت سابقه پیدا میکنه خب دو طرف اومده دیگه وقتی اومده من شک ندارم هم خود زید هم اجتهادش هم ادالتش لعدم سبقه حالت سابقت اندهاز الانوان علم مفروض محل کلام ناشرا فینل مفروض موضوع و بل عنوان نه ذات این جوز و ذات اون یکی عنوان موضوعه نه لازم و بقا مستثبه الاول یا یعنی این جوز و اون جوز تحقق عنوان مجموعه و این لازم عقلیه لازم عقلی رو استصحاب تحققی اثبات نمیکنه لوحوق من عنوان انفضاییه متقومه به دو طرفه بقا امام در رکوعش و وصول من به رکوعش این دو طرف نباشه لوحوق ما نمیشه لوحوق من به امام ماهیتون خارجیتون متقومتون به طرفه اون در رکوع بمونه خارجن و منم واصل بشم به رکوعش خارجن و اینده لوحوق پیدا نمیکنه میکنه این لحوه میشه لازمه اقلی و لازمه اقلی رسته تا به تحفه خودی و من الوازه ان نهازه الاناوین انتظائیتون لابد در من ها من از و ازا تحقه در طرفان فل خارج ارتفعش شد اگه دو طرف بیاد اگه امام در رکوعش مونده یعنی جبرهیل و ساده بود که در رکوعش مونده و شما هم به رکوع امام رسیدید ارتفع اشه مجرای استثاب نیست دیگه اون موقع که من شک دارم جورعیل نیومده هنوز شک دارم هنوز خب عنوانی رو بخوام انتظار کنم از چی مخوام انتظار کنم ترفینش نیست دو طرفش باید باشه تا انتظار کنم لذا این اناوین انتظاهیه یعنی متدومه به طرفین کماسر رحبهی المحق قلحمدانی در آشیه رسایه لذا حالا اینم بگم آقای حکیم در همین بحث در عروه احتمالا سفیه 119 جلد چهارم یا سوم که مربوط به نماز جماعته فرمودین این اقتران شرطه اقتران روکوه من به روکوه ما این اقتران کان من الاعتبارات محضه استصاب جاری میشه و اینکان له نهو خارجیتن یعنی یک شبه خارجیت داشته باشه در برشیاری نمیشه و اون برگشتش به همین مطلب منطقه عباراتش قاسده عباراتش قصور داره کمان که دیگر عبارات هم قصور داره اینو در صفحه بعد نوشتم به اینکه که یا اعتباری محضه یا انتظایی انتظاییات شبهه واقعیت دارن چرا؟ به خودش انتظاریه ولی طرف واقعیت داره زید و عمر اقترانشون موضوع شهریه است یعنی اگه با هم اومدن بهشون شهریه بده با هم نیمدن شهریه نده اقترانشون شرط شهریه است موضوع حکمه و این اقتران متقومه به دو طرفه هر کدوم دو متقرد بشونه بنابراین این انتظایات یک اعتباری به واقعیات دو متری دارند ولی اعتباریات این طور اعتباریات ذهنی محض اعتباریات ذهنی محض هیچ ارتباطی به خارج نداره منشأ انتظای خارجی نداره اعتبار محض لذا اعتباریات ضعیف‌تر از انتظایاتیات کمان که انتظایات از متأصلات اینو در اول نهایت الحکمه خوندید انشان اگه نخوندیدم مراجعه کنید علامه موجودات رو تقسیم کرده به سه قسم و انتظایی و اعتباری من حالا این اناوین اگه بخواد انتظایی باشه لابد دمن انتظای ها منت و ازا تحقیق طرفان خارج الخارج ارتفع شک من اساس. فلا مجال این اجند الاسطساب بنابراین عنوان انتظایی حالت سابقه نداره در مواردی که ما شک در یکی از دو طرف داریم ما اون موقعا که علم به دو طرف داریم استثار میخوایم چی به این عبارت همون موضوع بخشی روز که می فرمونده مقانگیتی نمورنشد در باقر اون حالت تقنید رو انتظار کردی از دو پر دوستی که داره درسته حالا آره شاید بشه برگرد دیروز گفتم که تقیید رو در اون چهار بسمی که محقق ادنای نقایل شده یه مقدر فرق داره به این نهر به صورت قاید کردی نمیدونه حالا این عنوان انتظار خودش مجرای استصاب نیست حالا میشه در منشه انتظایش ما استصاب جاری کنیم مزلتون حدی اون که نثبات ها زبانیوان به اجرای استصحابی منشه انتظاهه خب در خودش نمیشه حالا در منشه انتظاهی در ذات دوجود میشه استصاب جاری کنیم تا اینو اثبات کنیم ان نَا اسْبَاتَهُ نه درسته درست این اینم که من گفتم درسته به که اونا که فرقون به این از اثبات ول احراز نوشتم از جواب ان اثباته و ممکنون به خلاف احرازه احراز نمیشه ولی اثبات میشه یعنی اصل مثبت میشه اصل محرز نمیشه استثاب تحبودی محرزه ولی اگه خاطر مثبت باشه میشه بنابرای این کلام شماست امن اثبات همون ممکنون به شلاف في احرازهی پینه همون لایم احرازش ممکن نیست ولی اثباتش ممکنه چون اصل مثبت. اصل مثبت هستیت داری یا نداری مشروع نگن چرا؟ چون موجب کفه اگه موجب شرک نباشه اثباتشان در واقع به درد ما دیمی یعنی ما منشه و اثبات هم بکنید به درد ما اصل مثبت رو میگن مشکور دارن میگن اصل نمیتونه مثبت باشه به خاطر اینکه شعره نمیتون اینا رو ت... ما رو متعبد کنه به لوازم عقلی و عرفی و عادی چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟ فرضشون میتونه. میتونه؟ نه میگن نمیشه اصلا شعره نمیتونه خب آقای تو خلاف خرد میتونه؟ فرض اینه؟ خلاف کنده ها خب مشکور آلمه که اصل مصبتیت نداره دیگه برای لوازم عقلی اوتیت ندار ما میتونیم با استصحاب بقای در روگور لوحوق رو اثبات کنیم؟ نه چرا؟ چون لوحوق لازمه عقلی شد لوحوق لازمه عقلی و اینها رو به همین که گلام دارم از بیرون میگم به این نحن نوشتم و در صفحه دادو بن زر وقتی آپداده شدن نوشتم ولحصل ان موضوع صحت همان ادراک موضوع صحت نماز ادراکه و موضوع ادراک لوغه و موضوع لوغه كون امام را که عني نركو الماموم و من المعلوم ان الاستصحاب فقط اخیر رو اثبات میکنه اینکه امام در رکوع مونده حالا بعدش چی میشه اونا رو نمیکنه. نمی نه رو نه ادراک رو چرا حکمه به سهر ها؟ اونم عنوان انتظاییه دیگه قبلیت عنوان انتظاییه عناوین انتظاییه مجرای استطاب نیست چرا؟ نه چرا نیست دو طرف میخواستی وقتی دو طرف نیومده انتظار نمیشه، می وقتی بیاد شک نداری. اون ببین، اون یا باید که عنوان انتظاریه یا اعتباریه یکی از این دو قائل بشی دیگه. الان لوهو، خوب اونجا کانتون است. 500 نوزده چهل و سی و یه صوارم من یادم رفته. مال مستمسن. گفته اختران آیا از اعتباریات یا خارجیت؟ حالا اینو به این نفت داریم مطرح میکنیم لوحوق امر خارجی یا امر اعتباری یا امر انتظایه اختلاف اعلام ویزال اختلافاً اختلافا شدیده کدومشه لوحوق رو امر خارجی میدونید امر اعتباری محض میدونید یا امر انتظایی میدونید اگر خارجی باشه یا انتظایی باشه استصحابی این اثبات ولی اگر اعتباری محض باشه اثبات میشه کما علیه از سید الحکی به خاطر اینکه دو رو به اختران اختران رو گفته اثبات میدونه اثبات میشه اثبات نه لازم نیستی که خودش از سر شرعی میشه بر مستصر تو اعتباری تو حالته چون سن اختصاب داره اما تو مقام اختصاب ما اینجا حالتی ثابته ندریم که بخوایم اونایس به ثابته درست مستثنی حالا میگن این همه شوبات به خاطر این میگه یکی ای میگه اون حالت سابقه نداره یکی میگه لازم عقلی علاکله هر این ظهور استنباتی، ظهور استنباطی به خاطر ما سه روز داری میگیم باز در شوب هست ظهور استنباطی و ظهور بدوی یا استحصالی نیست استنباتی محضه حالا شما اینا رو روچه میدونید یا نمیدونید ولی خب تک تک اینها رو آقایین اگه الان تا فردا وقت نذارید به عمقش نرسید اینا بعدم میمونه به چی میخواید فتحا بدید شما یعنی اگه معلوم نباشه این لحوق رو شما عمر خارجی میدونید امر اعتباری میدونید یا امر انتظاری میدونید کدومش باید باشید اگه من نتونم تشخیص بدم لحوق چیه؟ ماهیت لحوق یک امر خارجیه؟ یا نه امر انتظاییه؟ یا امر اعتباریه؟ لحوق خارجی مدد نظره یا لحوق اعتقادی؟ من وقتی تکبیر گفتم به خیال اینکه که میرسم آیا همین کافی نیست برای ادراک من؟ اگر بگیم لحوق اعتباری مدد نظره و موضوعیت داره صرف اعتقاد من کافیه من گفتم میرسم حالا برسم یا نرسم اون حرف دومیه چون من به اعتقادم میرسیدم بنابراین محقق میشه و نماز سعیه ولی اگر بگیم نه لحوق خارجی مدد نظره لحوق خارجی برای مشکوکه من خیال میکردم میرسم معلوم نیست رسیده باشم حالا لوح آیا واقعش مراده یا ظاهرش؟ و اینا رو باید تو مباحث حلش کنید یکی از این دو طرف رو انتخابش کنید و اگر یک بحثی از امروز بمونه برای فردا یقینا بعدا هم براش فرصتی نیست 20 سال بعد هم که باشه شما اگه بنا بذارید بر اینکه برگردید برای اجتحاد بخونید تمام اینها رو باید تنقیهش کنید و ممکن نیست کسی در اینها به نظریه نرسه بعد بدون فتوان بده بذار اینا بمونه الان خیلی از مطالب رو باز امروز نوشته بودم تو جزوه وقت نشد کمان که در جزوه های قبلی هم همینطور مطالبش مونده اون قسمت هایی که ناپخته میمونه نمیشه هز کرد، اونا رو علامت بزنید تا چیزی که بیام جواب بدی ولی فرصتی که نیست من بخوام هم مفتنو بخونیم هم بخواهم این جزوه رو تک رو بخونیم فرصت نیست منحی سل مجموع ما مطالبی از بیرون میگیم بقیهشو خودتون بخونید برای این هاشیه آقا جمال خانساری چند نفر مراجعه کرد؟ پیدا مراجع کردیم؟ کردی؟ بله, مراجع. بله. مراجع. خیده کردیم دیگه خب این رو پیرین بگیرفتی که آقای اینا میدهد مراجع. با اون به اینا فوت شده و اینا نمیگی مستلزمه قابه بخاطر خاطب از جهد بسوری بوده شخص مقصر نبوده ولی اینها رو باید برگردید همه رو بخونید فردا در خمس چی میخواید بگید میخواید اکتساب معنی رو بگید موضوع مطلق اکتساب مطلق فایده یا چیز دیگه چی میخواید بگید نیاز به مبنا داره و همه اینها برگشتش به قسم سوم از ظهورات استنباطیه که اخباری اساسا قبول نداره پس وقتها رو آقاین لف ننند ن این جزوه ها رو آقاییم بیان بگیرن آقاییم جزوه های امروز تا صفحه 119 یک بگیرید این چه بعد کلاس من خوبی میزنم اگه کسی مخواد بری فرزمون خاله بریم ام کردهام میارم امروز چه مورد؟ تو بی تو بگی. خراک. چه پستی رو بزنم؟ اون بزن حالا میگم بعدی.